بسم الله الرحمن الرحیم صحبت جلسه ما درباره موضوعی هست که همواره در طول تاریخ و همچنین در جوامع مدرن مهور همه های فردی خانوادگی و اجتماعی بوده. و همچنین اساس پیدایش همه حقوق و قوانین عرفی، مدنی، اقتصادی، سیاسی و جزایی اون موضوع اسمش وظیفه است. وظیفه حق وظیفه، انجام وظیفه. به با خوب می‌دونیم که این موضوع مهدار رسالات همه انبیاء الهی نیست بوده در حقیقت انبیاء الهی و نشدند شدند الا اینکه وظایف رو به انسان بشناسوند زیرا شناخت وظایف همان شناخت خویشتن و لذا شناخت خدا و شناخت راه سلامت و سعادت بشر بر روی زمین بوده. از این لحاظ وظیفه مسئله مربوط به رابطه است. رابطه فرد با خودش و با جامعه و دیگران. انسان از جایی که موجود نیازمند هست و از جایی که نیازمند ترین موجودات عالم هست مجبور به وزیف است در حقیقت وزیف شناسی برامده از خودشناسی است و اساس خودشناسی شناخت نیازهای خیشتن است آدم و هوا در دوران خامتشون در بهشت نیازی به چنین امری نداشتند و به همین دلیل در دوران قفضت و بیخبری بودند زیرا همه نیازهاشون در بهشت خود به خود برآورده میشد همانطور که در قرآن کریم داریم که در بهشت هر هرچهرا که انسان اراده میکنه در همان حال به هیچ تلاش و زحمتی ارضا میشه انسان از زمانی که بر روی نیازهایی وارث شد که مجبور شد برای اون نیازها تلاش بکنه بنابراین وظیفه هم پدید اومد در حقیقت خروج آدم هواز هوا از بهشت عزلی سرآغاز وظیفهشناسی است همونطور که سرآغاز نبوت و احکام دین بود زیرا احکام دین اساس این وظایف پدید عمده بود و این وظایف ریشه در نیازهای انسان داشت پس خروج انسان از بهشت سر آغاز وظیفهشناسی اوست زیرا سر آغاز نیازهایی هست که بدون تلاش برآورده نمیشه همانطور که خروج انسان از بهشت سر آغاز تاریخ بشر نیست هست خب برای شناخت وظایف پس بایستی نیازهای خودش رو بهتر بشنست نیاز شناسی و زیفه شماسیست. ببینید حیوانات هم نیازهایی دارند که این نیازها چون محدود هست چون قریدتا و ذاتا چاره هرس و زیاد طلبی نیست کمترین تلاشی این نیازهاشون برآورده میشه و خود همین تلاش هم در انسانها ها قریدی است ولی از نشونه میشه تلاش و یا جهاد گذاشت داره. انسان بطور کلی براساس همین موجودیت جسمانی و فیزیکیش دارای چار عرصه از نیازه که از سرطاب ها غریضی ترین و حییاتی ترین نیاز او که از پاییننش شروع میشه نیاز شبانی است که در پایین ترین حد بدن اوست بعد میاد کمی بالاتر نیاز شکمی است که بر زیر شکم استوار است بعد میاد بالاتر و به دل میرسه نیاز او به آتفه و به محبت هست و بعد بالاتر و به سر میرسه و نیاز او به کسب خرد علم و معرفت هست این چهار قلم رو از نیاز و چهار مرتبه از نیاز انسانه از زیر شکم تا به سر و هر کدوم از این قلم روها وظایف خاص خودشون را هم طبعا دارا هستند و انسان به میزانی که این وظایف را ادا میکنه این نیازهای خودش رو میتونه به طور عادلانه ارضا کنه تا بتونه به یک احساسی از وجود به تدریج دست پیدا کنه زیرا انسان به میزانی که نیازی از خودش رو ارضا میکنه دوچار احساس وجود و احساس هویت میشه و دوچار خوشنودی و احساس سعادت میشه خب از جایی که نیازهای انسان بی انتهاست و فقط نیازهای انسانه که دوچار یک که هرس و بپایانه و هرگز سیلی نمیفذیره درست به همین دلیله که وظایف فدید اومدن و اصلاً انسان محتاجه به اخلاق دینی و احکام شریعت انبیاء شد درست به همین دلیل که حیوانات به دین نیازی ندارند به تلاش و به جهاد دینی و به عقل دینی و به تهوه نیازمند نیستند برای اینکه نیازهاشون محدوده به حیوان که گرس شد به یاد ارزای شکمش میفته میره کمی میکره یا میداره. که کسی شد راضی میشه تا نوبت بعد دست انسان تو نیست و چون نیازهای انسان بی پایان و سیری نافذیر و اشباع ناپذیر هستند بنابراین خود ارزای فیزیکی و طبیعی نیازها به خودی خود این نیازها رو ارزا نمیکنه و انسان رو هرگز حتی به طور مختعی و کتا مدت هم دچار بینیازی و احساس بینیازی و لزا دچار احساس وجود و هویت و سعادت نمیکنه پس از یک لحاظ انجام وظیفه و شناخت وظیفه برای این هست که انسان بتونه واقعا و از وجودی گام به گام به قلمرو بینیازی برسه تا به قلمرو احساس وجود و هویت برسه فقط از طریق ارضای نیازها انسان نهتنها هرگز به قلمرو بینیازی و احساسی وجود نمیرسه بلکه روز به روز هریضتر میشه و در قحطی وجود میفته و در دریوزیتر میشه و در واقع به قلمرو نابودی میافته طبیعی است این چهار قلمرو از نیاز نیازهای انسان که اسم بردیم موجب چهار، نو و چهار دسته از وظیفه و وظیفهشناتی است بطور مثال انسان برای ارزای قدرت شهوانی خودش دراز بقای حیات جانوری او بر روی زمین هست و یک غریضه درجه یک حیاتی است محتاج اینه که مثلا ازدواج کنه و خود این ازدواج به خیزش وظیفه و و انجام وظایف هست و حدود هست انسان در غیر در شهوت بارگی خودش بیمار و غنجور میشه و همواره در یک قهطی فضاینده است همونطور که انسان برای ارزای قریضه گرسنگی و شکم خودش وظیفه داره که در حد توان امکانات خودش تلاش کنه همراه رو کنه شغلی داشته باشه کسب با کاری داشته باشه و برای این اساس نیست حقوقی را بشناسه ضایفی را بشناسه و بر اساس این وظائف کار کنه چون تو که انسان به میزانی که نیاز به محبت در دل خودش داره طبعاً بایستی حقوقی را بشناسه و ادا کنه یعنی وظایفی را درخ کنه و انجام وظیفه کنه مثلا انسان وقتی میخواد که محبوب کسی واقع بشه طبعاً بایستی خدمت کنه تا محبوب واقعی بشه مثلا این یکی از آداب و حقوق و وظائف کسی محبت است و ارزای آتفه است و نیاز عقلی نیاز انسان به دانستن و فهمیدن علم و معرفت که بالاترین این حد نیاز هست طبیعتا وظایفی رو ایجاب میکنه انسان بایستی بشناسه به المثل کسی که میخواهد بیشتر بداند و بیشتر بفهمد، طبعا بایستی آموزگاران و معلمانی رو جستجو کند اون خودش یک است در نزده این آموزگاران تعلیم ببیند عدب داشته باشد تکبر و قرور خودش و زیر پا بگذاره سوال بکنه و در قبال آموزگارش کیرش، استادش نیز دارای وظایف و حقوقی هست که بایستی انجام بده تا کسب به علم معرفت هر معرفت و علم و معرفت نیز از نیازهای ذاتی ویژه انسان هست دو دوتون نیاز نقستین نیاز شکم و دیر یک ایک نیاز صرفاً حیوانیست ولی نیاز با محبت و نیاز و معرفت البته نیاز خاص انسان هست قنابولین در این قلم رو انسان بایستی وظایفی ریجه تر رو بشناسه و مسلما ادای حقوق و وظایفی بسیار مخصوص رو داشته باشه تا بتونه به محبت برسه و به معرفت برسه زیرا خود محبت و معرفت که در مرحلی نهایی به انسان یک احساس وجود و حوییتی جاودانه و به انسان احساس جاودانگی و هستی رو هستی جاودانه و لای بنابراین از یه بلاد گفتش که این چهار ارسه از نیاز ها و این چهار عرصه از وظیفه و انجام وظیفه چهار مرتبه و چهار نو از تلاش انسان برای رسیدن به احساس وجود هست وجود به عنوان جاویداندگی چرا اقراین اینکه ما در قرآن کریم هم میدانیم در تورات و انجیل هم مستور هست که آدم ها وادر بهشت از در زمانی که درباره جاودانگی خودشون دوچار شک شدند در واقع منشه کفر شکی که در باره جاودانگی خودشان بود الهزه تردیل در مورد جاودانگی خودشان وقتی که احساس جاودانگی در این خستشدار شد به همان میزان دوچار وصفصه ایبلیس شدند و نهایتا در اون بهشت ازلی رو که قلمروی روح احساس جاودانگی بود رو از دست دادند بنابراین حیات انسان در قلم خروج از بهرشت و حبود از بهرشت تماما قهدی وجوده زیرا جاودانیگی را از دست داده یا دوچار تردید و خستش شده بنابراین از دیگراد باید گفتش که شناخت و وزیف شناسی و انجام وظیفه تماما برای رجعت به احساس جاودانگی به مفهوم احساس وجود به احساس هویت. حبیت هویت وجود و جاودانیگی همه اینها کما بیش مفاهی واحد در یک عرضه واحدی از معنویت برای روحانیت بشر است. خب، اگر اساس شناخت وظیفه و ادای وظیفه ها هست، پس این واضعی که انسان باستی نیازهای خودش رو بشناسه. پس باید گفتش که وظیفه شناسی خود معلول خودشناسی است. همونطور که که دین خدا که تماماً قلم این وظایف و حقوق این نیاز ها هستند تماما مولود معرفت نفس هستند برای همینه که دین و شریعتی که از معرفت نفس از خودشناسی بر نقیزه دینی ستیست و یا ریاییست و بزودی انسان از اون بیزار میشه زیرا از آن خاصیتی نمیبین پس بزرگی شناسی امریست مستقیمن معلول خودشناسی خودشناسی با مفهومه نیاز شناسی شناخت نیاز های خوشتن خیلی ممنون از ما که فرمودید تا با مسئله بگی گفتین باید گفت که اولین وضعید خودشناسی است لازم من از شما اینه که آیا خود خودشناسی هم دارای حقوق و وضعیف بیرهی هست یا نه که اینسان قادر باشه از طریق ادای این حقوق و وظایف به قدم خودشناسی وارد بشه و خودشناسی رو برای خودش امیختر بکنه تا از این طریق بتونه نیازهای خودش رو امیختر بشنسه و این شناخت طبیعتا باعث میشه که وظایف برخاسته از این نیازها هم بهتر عدا بشه آیا تن حقوقی وجود داره یا ما چایی کرد؟ خب تر قسط که وظیفه اول خودشناسی است و اینکه آیا خود خودشناسی نیزدارای حقوقی و وظائفی از قبل تعیین شده هست که انسان به میزانی که بر این قلم رو بارد میشه بتونه نیازهاش رو و وظایف دیگرش رو بهتر بشناسه تا بتونه به ارضای سالم این قراریز و نیازها برسه تا در این ارضای سالم و به احساس وجودی برتر دست پیدا کنه و در خودش آرام و قراری بگیره و حرس نیازها رو بتونه کنترل کنه و در واقع به خودش سلامت رو بخشه آنچه که سلامت گفته میشه در حقیقت همین یعنی بناعت یعنی قنی شدن وجود از این درجه که حرص بیپایان نفس انسان در واقع به سلامت میرسه و احساس بینیازی و دید میاره که این احساس بینیازی خود زمینه احساس وجود و احساس انسانی انسان از موجودیت خودش. خب ببینید ما این رو میدانیم که همه انبیای الهی بانبارن با نخستین کسانی که آمدند وظایف رو برای بشر سعیم کردند نخستین وظایف عملی که برای انسان تعیین شد پس از خروجش از آن بهشت عزلی و قریضی خودش تماما وظایف مربوط به قرائز حیوانی بود که معروف است به قرائز و نیازهای به اصطلاح که شکم هست و قدیده جنسی برای همین نخستین و ابتدایی ترین احکام دین و شریعتها در طول تاریخ مربوط به این قرائز پاییمتنهی و نیازهای پاییمتنهی بوده که وظائف که خاص خودش رو هم بدید آورده که خود همین مقدمه واجبی برای رسیدن به نیازهای بالاتنهای حساب میشه نیازهای عاطفی و نیازهای فکری چرا برای اینکه انسان تا زمانی که اثیر نیازهای پاینترینهای و حیوانی خودش است در آنجا آرام و قراری نداره و حدودی نداره و حرسش همچنان فضاینده است هرگز مجال بالندگی به نیازهای بالاتنهای یعنی نیازهای عاطفی و نیازهای فکری پیدا نمیشه درست انسان علاوه وجودی دارای قلب دارای روح و دارای قوه خرد و ادراک هست ولی اینها مجال سخن گفتن و ظهور بروز پیدا نمی کنند تا نیازهای پایین‌تنی فرزا نشده باشه منطقی این ارزار مباستی بدونیم که اینجا یک ارزای کاملن معنوی است و اگر نه انسان هر چه که بخواد بیشتر به این غرایز بپردازه این غرایز رو تشمه تر، گرسمه قهتی زده و دیوانه تر میکنه وضایی دیگه هم بیایی برای اینه که انسان به این نیاسا قناعت بده آنها را آرام کنه. همینطور که پاینتنه انسان زیر بنای حیکل انسانه همونطور که زیربنای بنای استمرار بقای انسان بر روی زمین در تاریخ هست زیر بنای عاطفه و معنویت و فکر و رشد اقلالی انسان هم همینه این زیر بودن یک مسئله است که در دین هم وجود داره یعنی علت بودن، اساس بودن انسان باید اول دارای جان و جانی سالم باشه تا به معنویت و به روح خودش رو بپردازه قصوحانی معروف گاندی رهبر فقیر هند رو ما بیاد داریم که میگفتیش که من نیومدم تا روح مردمان هند رو به نیروانه و به کلیشنا برسانم و آنها را لازم روحانی رستگاه کنم من آمدم تا آداب خوردن و خوابیدن و استهمام و نظافت و این مسایل دریدی و جانوری رو به مردم هند بیاموزم همه برای همین منم و این واقعیت بوده همه انبیا الهی اساساً در درجه اول برای همین اومدن خب این سال هم وجود داره که خب از بشر مدرن امروز خب در چه شرایطی قرار داره حاگیر بشری واسه شناستر دوران های قبل اگر چنینه ابراستی از لازمی نیازهای خودش راضیتر و غانستر باشه آیا چنین به نظر نیست اگر بدتر از گذشنا باشه لاغل بهتر نیست. بشری حویستر، تشنتر، گرسنتر، قهدیدنه با ولعی فضاینده. پس میده که بشریست مریستر درست هم به همین دلیله که معنویت و عاطفه و خرد و عقل در این دوران اگر پستر از دوران قبل نباشه مسلما برتر نیست. البته ادعاهای عقلانی و علمی زیاده ولی از عقل واقعی و علم عملی به ندرت خبری هست بنابراین این ساخنگاندی و به شامل حال مردمان هم نمیشه این موزه شامل حال همه مردمان جهان از مورد مثلا خود آمدیکاری ها هم میشه بعد انسان نظر جول ولیفی داره که از جان خودش حفاظت کنه و جان خودش رو به یک امنیت و سلامت و آفیت بیگه تا قلبش برسانه. خود همین یک نیاز وجودی است برای انسان. این نیازی تبدیلی انسانی رو درک میکنه. اینکه شما فرمودید که واقعا خود خوشنوازی عنوان اولین وظیفه انسان خودش دارای حقوقی از قبل تنش شده میتونه باشه یا نه. بله همینطور هست اصلا خود این هوش و حواس غریزی انسان چشم و گوش و هوش و زائقه و اعضا و جواره خودش نخستین و طبیترین ارگان خودشناسی انسان هستند ارگان های به مثل وقتی من نشستم اینجا به ناقا احساسی تشنگی میکنم خب من بدون اینکه تفکری کرده باشم تعقلی کرده باشم احساسی تشنگی میکنم احساس گرسنگی می کنم سرما و گرما میکنم احساس بیماری میکنم و بقیه نیازها مثل نیاز جنتی و غیره پس میشه گفتش که خود موجود انسان در ذات خودش اون خودشناسی رو همراه داره این خود آگاهی رو با خودش داره این از جوهره جان انسانه این از براساد حیوانی انسانه که البته در انسان بسیار شدیدتر و قبیتر عمل می کنه بنابراین خودشناسی در انسان خدازرایی خودش حضور داره ولی کافی نیست برای این انبیای الهی اومدن حیوانات پیامبر ندارند او, او ندارند و ظاهری شده ندارند ولی انسان داره درست به همون دلیلی که ذکر شد خب شما نگاه کنید از اولین آکامی که انبیای الهی آوردن مربوط به مسئله پاکیزگی و نظافت و تهارت همین تن بود از نظافت و منال ایمان خب از شعارهای اصلی دین خدا و مخصوصان در اسلام دوست چندان اهمیتش واضی شده که نظافت از ایمان انسانه خب ما ایمان میدانیم رو به قلب و عقل و از یک بالاتنی پس خود همین سخانه پیان نشون میده که انسان به میزانی که به یک نیاز بالاتنی دستی یافته ایمان یکی از نیازهای بالاتنی ای انسان است. ایمان یک نیازه. ای نیاز یک نیاز ذاتی است ایمان. برای کافران هم این نیاز است. شما در قرآن هم ذکر باشه که چطور کافران میگویان که ما هم ایمان داشتیم. ببینید این یک نیاز ذاتی است. چون این اگر انسان به که به یک از نیازهای یه خودش که ایمانی رسیده باشه، نظافت رو بنو ببند یک امر واجبی وجودی در خودش میابه و نظافت جزء ایمان و از نشانه های ایمان او خواهد شد ببین این ای اصل یک بعد برمی که ما خود انبیاء الهی می‌بینیم که از اصفه های نخستین اخلاق و آداب و وظایف مربوط پایین تنه بودن خود انبیا؟ از اصفه های نظافت تهارت نظم و نزاکت بودند و خود پیامبر اسلام این مسئله در تاریخ کاملا سخت شده ایشان حتی بسیاری از محققین نخستین بانی و مختره مصواک میدانند یعنی بهداشت و نظافت دهام اللج تمگیزی جسمانی ایشان یک عصفه بوده و در این حال ما که عصفه ایمان و عقل و حکمت هم بوده پا هم است. خب این سآل نیز وجود داره که واقعا وظایف پایینتنهی چه ارتباطی با وظایف بالاتنی دارن و نیازهای پایینتنهی یعنی نیازهای حیوانی ارتباطی به نیازهای بالاتنی و نیاز خاص روح انسان دارن خب این مسئله اولاز غریزی کاملا مفهوم هست همونطوری که سکفا هم می آن کسی که معاش نیست معاد نیست خب معاش این در راقه میشه گفت از عیش میاد از سلامت میاد از سرور و شادی و نشات تن میاد خب پس این بستی پیدا شده باشه تا انسان میلی به معاد و معاد فهمی پیدا کرده باشه خب معاد از طریق قلب و اندیشه درک میشه بنابراین تا این قرائد پایین به ایک حتی قلی از رضایت و قنایت و سلامت نرسیده باشه بنابراین معاد خواهی و معاد فهمی هم در انسان پذیر نیست پس با این ما میتونیم بگیم که انسان متعهد به خودشه یعنی موظف نسبت به خودش خب ببینید هر یک از نیازهای انسان از یک به نظر میرسه که یک وارده است از بیرون بر انسان از یک نظر میرسه که یک ساده است از عماق ذات و از عماق نهان وجود انسان خب انسان که اراده نمی که تشنه بشه یا بشه بشه، تشنش میشه گشنش میشه برقیه نیازها هم همین طورن انسان به میزانی که پاسخوی به این کنشهای های وجود خودش میشه و واکنش نشون میده در واقع میشه گفتش که خود همین خودش قلمرو خودشناسی است و پذیرش مسئولیت وجود خوده ولی بله انسان وقتی در خوش دقت کنه میبینه که آنچرا که او اراده مینامه واقعا اراده نیست اگر اراده هست یک اراده ثانویه و درجه دومه یعنی انسان اراده نمی کنه که در فلان نیاز بشه نه اصلا نیست. در مورد نیازهای حیاتی اینها کاملا بسرد جبر در انسان آرز میشن و بروز پیدا میکنن پر انسان به میزانی که نسبت به این نیازها و این کنشها و واکنش نشون میده دارای مسئولیت نسبت به خودشه این بنیاد دین هم همینه دین یعنی نسبت به خود انسان مومد در درجه ایمانش انسانی که نسبت به خودش متعهده و مسئول خودشه مسئول خودشه این یعنی مسئول نیازهای خودشه خبت انسان باید بلد باشه که در مقابل این کنشهای وجود که از ورای ارادش و در خارج از ارادش بلوارد میشه چه واکنش نشون میده این واکنش شناسی در واقع همون وزیف شناسی است من در قبال هر قدوم از این کنش های وجود خودم که در خارج از اراده و خواسته منه چه واکنشی میدم و چه پاسخی بم به خودم بدم در مفهوم نهایی مجموعه وجود من به میزانی که من در خودم نظر میکنم و به خودم واکنش نشون میدم بیشتر درک میکنم که در من جهانی عظیم و غیبی نهفته است اسرار و احکام غیبی و عظیمی نهفته است که اینها من نیست و در حیطه اراده و اختیار من نیست خود همین قضیه به من نشان میده که در من غیب وجود داره این همان ایمانه به غیبه در تفکری یعنی امیختر و در پاس و خویی جدیتر نسبت به نیازهای خودم من نایتم میسنم خدا رو در خودم ترک کنم که من یک مخلوق هستم و خالقی دارم خدا رو پس به میزانی که من این واقع شناسی رو که همون وزیب شناسی است و همان دین شناسیست است و شریعت شناسی است خود به خود ما نهوام بگام به خودشناسی خودم نزدیکتر میکنه خودشناسی ما رو به خداشناسی در خودم میبره نه خودشناسی ما برای خودم بلکه خودشناسی در خودم میبره این بعد واضحه که اگر بگیم آیا هر از قاب شده از قاب شده وجود داره تا اولین وظیفه انسان رو که خودشناسی هست رو ممکن بکنه و تسهیل بکنه بله این همان احکام شریعت انبیای الهی است. خب به میزانی که ما به این احکام تن تندر می‌دیم و اطاعت می‌کنیم از رسولان، در واقع میشه که برگل مروی خودشناسی را سیبرد می‌شیم، نیازها خودمون رو بهتر درک می‌کنیم و می‌تونیم که واکنش‌های درست نسبت به این نیازها چی هست؟ و وقتی عمل در مغایم بی نهایت بالای مدارایت قناعت می‌شیم و این حرص و شهرانیات و اعصار گسختگی جنون رو می‌تونیم در خودمون مداوا کنیم و شفا ببخشیم پس در این اعکام تا بهش عمل نشه اون خودشناسی و این قناعت حاصل نمیشه نقل است که ادهی از فلاسفه اومده بودم پیش رسول هم. ساعت میکردن که حکمت این اعکامی که شما میگویی این تو توس حکمتش چیست یعنی فلسفه چیست به زبان این ها از که ما انبیان نیومدیم اومدیم تا حکمت ر ما من این تا حکم را بگوییم حرکت به این حکم عمل کند خود به حکمت آن خواهد رسیم بس مردم که حکمت بویشی نیست فردی نیست خطابه ای و آموزشی او رسی کلامی نیست حکمت انسان در خودش یاده مردم از که بر توضیحه به تون من یک تن داشتم که خدمتون رو بشر مدرن امروز در واقع باید گفت که بیش از هر زمانی از طریق آموزش های اجباری و رسانه ها کسب دانش شده که بخشی از این علوم هم مربوط به شناخت وجود انسان هستش. و اساس این توضیح پس باید بگیم که بشر امروز باید خود و وی شناسترین بشر باشه. و در نتیجه راضی ترین و با هویت ترین میشه اما این تماشای این بشر چنین چیزی رو به ما نشون نمیده خب این چه معنایی داره و اینکه خب شما صحبت از قرایض میکنید که حیاتی و به اصطلاح رکن حیات بشر بر آنها اوسوار هستش اما همین قرائز حیاتی در بسیاری از موارد امیالی رو در افراد ایجاد میکنه که اونها رو به یک سری اعمال خلاف اخلاق و دین میکشونه و به همین میزان که میشه گفت که قرائز پاینتنی اساس و حیاتی بشر هست و همین میزان هم همین قرائز هست که بشر رو داره نابود میکنه به خاطر جنایت ها و جمعون که از همین قرایز حیاتی در واقع نشغت گرفته این رو هم خواهش من توضیح بدیم که خب وقتی شما میگید نیازهای های و نیازهای واجب و وظیفه شناسی و اساس شناخته این نیازهاست. خوب خب این جای بسیار فریب رو برای هر بشری خواهد داشت که به هر شکلی قرایز خودش رو بخواد ارضا بکنه و شدت و طیف این قرایز رو هم به نام نیاز برای خودش بذاره ببینید ما با بشری رو به رو هستیم در جهان امروز که غرق حوثبازی های خودشه وقتی شما صحبت از نیاز می بشر امروز نیاز خودش رو گم کردید از آن پرفک نمکی یا نوشابه با عنوان یک نیاز مطرح میشه خب آیا چگونه باید این نیاز رو از نیاز های واجب تشخیص داد وقتی که با یک جوان امروزی ما صحبت می‌کنی، اون داشتن اتومبیل یا خونه و یا اون از این دست رو نیاز های واجب خودش میدونه و واقعا تصور میکنه که بدون این ها نمیتونه زندگی بکنه خب اینجا واقعا چگونه نیاز های واجب رو و غیر واجب رو و حوثبازی ها رو تفکیک کرد این فکر میکنم مهمترین موزله بشر امروز هست در قرم روی بیان نیاز چون نیاز گم شده و ما باید تفکیر کنیم که راجب چه چیزی داریم صحبت میکنیم چون تمام این مسائل هم فقط بر اساس ارضایی بیشتر همون پایین است. من هنوز به بالاتنه نرسیدم در همون قلم روی پایین تر است که تمام این نیازها بسیار واجب میاد حتی وقتی صحبت اتومبیل میکنیم اون هم برای اعضای بیشتر پایین تر است که وجودش ضروری است. من می میشم سوالات موط توصحیم اولین درست دواقع از این لازه صورت بستر نیازهای صادق و نیازهای کاذب بشر مدرن امروز است. به مثلا خوب این واضحه که مثلا قرید جنسی قرید است و راز برقای انسان در جهانه و نیاز به زواج واجبترین نیاز هاست ولی خودمون خب ما میبینیم که بسا یک جوان مثلا داشتن اتومبیل و کامپیوتر و موبایل رو یک ویلا و چند صد میلیون پول در سایبان بانکیش رو مقدم می‌دونه برای ازدواج میگه وقتی اینا رو داشتم اون وقت در مورد ازدواج فکر میکنم خب نشون که انسان واقعا دیوانه شده انسان با نیاز خودش رو حتی نیاز حیاتی خودش رو هم دیگه درک نمی کنه. نشون که حتی از حیات و غریضه حیوانی و جان خودش هم بیگانه شده چنین انسانی برای میشه این انسانی یک ببییمار انسانی است تماماً بیمار و متشنج و یک انسانی است ماجخیایی تو این اساسی سر از این حرفخواست. آنچه که تمدن مدرن امروز نام داره این تمدن علمی سنتی. ای در واقع گفتش که محصول یک ایده است. این ایدهی خیلی واسه و آن اینه که فقط انسان برای رسیدن به احساس وجود و هویت بایستی به نیازهای خودش بسارو مستقیم پاسخ بده و هرچی که نفس انسان میخواد انسان مرید نفس خودش باشه و تمام انرژی خودش رو صرف این کنه که هر که نفسش میخواد او بره و این رو نیازهاش رو تامین کنه این ما میدونیم که سیلیست، جون آمیز و امتحان نداره. به زبان بسیار ساده، تمدن امروز جهان در اساس نفس پرستی و پیروی از نفسی که خودش حتی نیاز خودش رو نمیشناسه ناسه شده. خب چنین فکری که چنین تمدنی رو پدید آورده مسلمان به جای بشر امروز میبره که به خود براندازی و براندازی خود حیات بر روی زمین داره بکش میره براندازی حیات و جان آنشان های این خود براندازی رو در همه زمین های موزه شاهدش هستیم در این مورد ما قبلن هم بحثیتی این توضیح نمیدیم ببینید از یک لحاظ انسان یک نیست. به خاطر ویژگی خاصی که نفس او داره که بزرگترین ویژگیش هم حیث بودن نفس اوست او را تبدیل به یک حیوانی صد اجتماعی و ارتباطی کرده حیوانات ارتباطشون با همجنسانی خودشان بسیار کوتاه و لحظه ای هستش و حتی واجب هم خیلی نیست یک حیوان به فیلم سلاللاز غیر جنسی این جنس مخالف خودش اگه پیدا کنه سال یک دو بار دوبار با اون نزدیکی میکنه اگه پیدا نکردن مسئله نیست زندگیش میکنه. در مورد تغذیه خودش هم نیازی به حیوان دیگری از جنس خودش لزوماً نداره چرا برای نیازهای او محدود و خیلی سریع قانع میشه خود همین نشان میده که خود حیوان ذاتن و ناخداغاه وزیفشناستره و وجودش. یک قرآن ذاتی از یک سری وظایف و حدود و حقوقی پیدا میکنه که انسان اون رو هم نداره. برای همین خداوند در قرآن انسان رو یک موجودی اصلا نفسن کافر و ظالم و ابله نامیده. و از این خود قرآن هم می‌گه اکثریت مردمان رو نگاه کنید اونها عصبونا تبه پستر و بخترن. درست این نفس حریس و بلانده و دیوانه بشری خودش راز اجتماعی بودن او را پدیدا برده از یک لحاظ نیازهای انسان ذاتا ارتباطی و اجتماعی هستند حتی هیوانی تنی نیازهای بشر هم او را محتاج دیگران می خب از اونجایی که مثلا گفتیم یکی اصاسی نیازهای انسان نیاز شهبانی است خب، انسان برای ارضایش شعبت خودش مرتاج جنسی مقادر خودشه و از که این نیاز بسیار شدیده مجبوره به ازدواج کردنه که یک همسر رو همواره با خودش داشته باشه و به هم میدون مجبور یک را بیش از ساعته روزمره رایت بکنه وگرنه نه با ازدواج هم مشکل جنسی و شبانی او حل نخواهد شد و ارزا و قناعت و سلامتی نخواهد یافت نیازش شکمی انسان خب انسان اون اونجایی که الله یک یک بلعندهی سیری نافذیر هست و تنو و طلبه مجبور کار کنه و در کار کردن خودش محتاج دیگرانه انسان هر شغل و کاری که داشته باشه محتاج به دیگرانه چه طور کننده باشه چه مصرف کننده باشه چه شغل یدی یعنی داشته باشه چه تاجر باشه چه معلم باشه هر چی باشه برای ارتضاق خودش محتاج به غیره محتاج به دیگرانه به در مورد قریضه و قلبی هم خوبطبیتاً انسان محتاج به دیگریست که دوست داشته باشه و دوست بداره حال لازه کسب به ایلوم محتاج هم محتاجه دیگریست کس به کنه کسب معرفت کنه پس ببینیم این چهار قلم رو اصلی نیازمندی انسان در واقع ذاتی ارتباطی دارند و انسان رو طبیل به حیوانی اجتماعی و قول معروف مدنی گردن مدنیت حاصل این تبعی از نیاز انسان هست از مدنیت تماما برخاسته از عتش بیپایان نیازهای انسانه خب انسان لازی حتی جسمانی هم ما میدونیم که مثل هر موجود دیگری از خودش نیست مطمئن انسان درک میکنه که تنش از خودش نیست از پدر مادرش، از طبیعتی از موجود دیستشه. نهای هم با مرگش این تنها دست خواهد داد و تنش از غیرره و به سمت غیر میرهآن قرارشم تمام از خودش نیست و انسان اکه دراز نمیکنه که دارای چه این نیازی باشه از غیر از جای بر وارد میشه ما معتقدیم از خداونده که این نیازها در انسان پیدا و باز همین نیازهایی که از غیر خود انسانه او را به سمت غیر میکشانه یعنی انسان رو اجتماعی میکنه بنابراین درست به همین دعیلی که وقتی از ورشت سخن میگوییم گوییم دقیقا داریم از امری در رابطه با دیگران سخن می گوییم نیاساز آتیست از خود انسان باید می خیده مربوط به فردیت و جسمانیت و انسانی ولی انسان را به سمت غیر می پس درست به همین دعیلی که تمام احکام دین هم حقوقی در رابطه با دیگرانه یعنی حقوق است تمام احکام دین حقوق است، در باید حتی خصوصی ترین احکامی دین که عبادات هستند، نیز که فردیترین ترین اعمال دینی هم انسان در با یک قیر نامرئی و غیبی در داره با اون خداست انسان با غیر از خودش داره دیادک میکنه صحبت میکنه دعا میکنه راز و نیاز میکنه و انسان در افتباه این غیر که خداست هم طبیعتاً تمامای داره نیازهای خود شدار میکنه یعنی اساس عبادات برام نیازت یعنی راز نیاز کردن سنگ زیر بنای عبادت ها و عبودیت های بشری اینه که انسان نیازهای خودش رو ببره پیشه کسی که او این نیازها رو به انسان داده چرا برام که او انسان را خلق کرده است؟ به انسان حیات داده قرار استده و این نیازها رو بخشیده خب پس انسان این نیاز رو به درگاه کسی میبره که این نیاز از اوست و با تجربه در نیابه که خودش به خودی خود نمیتونه این نیازهای خودش رو برابرده کنه در رابطه با بقیه مردمان هم هست چه رفت و تجربه کردید که دیگران هم نمیتونن نیازهایی رو ارضا کنن نایتا مجبور شد تا این نیازهای خودش رو ببره درگاه آن بینیازی که ما رو آفریده و این نیازها رو در ما نهاده یعنی نیاز رو به درگاهی بینیاسی میبنی. به درگاهی قیلیدی که او خداست خب طبعا انسان به میزانی که سعی میکنه بر اساس عقل و دین و وظیفه شناسی از خودش ارضا بکنه تا این عطش و قهدی زدگی نفس خودش رو مهار کنه تا به خودش قرار و احساس وجودی به عقشه در میاد که در رابطه با دیگران هم انسان دارای حقوق و وظایفی و فقط نیست که خودش دارای نیاز باشه و دیگران فقط وظیفه داشته باشن تا نیازهای رو برآورده کنند بلکه من میبینم که دیگران هم خود درست مثل من دارای نیازهای هستند مثل من و ما باعثی در رابطه با هم دیگه به هم دیگر کمک کنیم تا نیازهای همدیگر دیگه رو برآورده کنیم پس نسبت به هم دیگه وظیفه داریم و از جایی که دیگران فقط وزیفه این نیست که نیازهای ما رو برابرد کنن بنابراین من هم باعثیم نیازهای اینها رو برابرد کنم و ما باعثیم در اینجا که مسای داشته باشیم با هم دیگه صداقت داشته باشیم نیازها را صادقانه و خاشانه در میان بگذاریم و از هم مدد بتربیم برای ارضای نیازها ببینید صداقت توازوی در بیان نیاز. اینا اساسه اقام دینه ببینی اینا حقوق نیازه صداقت از اصول اولیه دین هست از حقوق اگری دینه که بایستی رایت بشه خشوق در رابطه همچنین جایی که دیگران نیاز دارند، بعدانجایی که نیازه که هم حد حدودی نداره پس من به تجربه در میابم بایستی نیازه خودم را محدود کنم در رابطه با دیگران این هم تاور تا قومه مشخصنداری یعنی نیازها رو محدود کنم و جولان نده خب اساس روابط اجتماعی تماما بر پایز پاینتنی استواره. نخستین جامعه خانواده است که با ازدواج و دید میاد که بر اساس نیاز کاملاً پاینتنی بنا شده رابطه رابط ای چطور رابط است رابطه است کاملاً و این نیاز پاینتنی یک ازدواج رو وجود آورده خواه، نخواه. ولی به میزانی که فیلم این زن و شوهر اساس حقوق دینی که نخستین صداقت و توازوی در رابطه و تقوا و خیشتنداری هست به نیازها همدیگه پاسخ میدن و این نیازها در انسان قرار و ارزا و اقنایی به دست میاره یواش یواش این رابطه به قدم روی کشیده میشه یعنی آتفه دوست داشتن، اگه هم بگم فکری، حقیلی، دیالوگی و تعلیمی و تنبیتی و مبادله فکر و رشد حقیلی در رابطه با دیگران. رابطه دیگه هم در حریم جامعه همینطور هست یک فرد در بینده از جامعه نقص نیازش امرار معیشته. این یک نیازی کامدن غریزی و هیوانی است. و دل این حال به میزانی که حقوق دین رو در این امرار معیشت رعایت میکنه به یک حداقل اقل قناعتی میرسه و حداقل سلامتی میرسه حالا در این جامعه وسیع بیرون کم کم نوبت به دل میرسه نوبت به ذهن میرسه نیازهای قلبی نیازهای فکری مسئله تحلیم تربیت محبت از خودگذشتگی آموزش دادن آموزش گرفتن و از آخر و پس این واضحه که زیربنا نیازها چیست و از یک لحاظی نیازهای های قلبی و فکری سانوی هستند از یک لحاظ این نیازهای های که قراریز حیوانی هستند برای انسان در خدمت نیازهای های هستند برای انسانیت انسان چنین در غیر این صورت اگر این نیازها هرگز انسان رو فقط به نیازهای عاطفی و فکری و معنی اگر نبره در خود پایینتنه انسان رو به شدت قهتی و عذاب و زجر میندازه و حتی از هم ساقط میکنه انسان چرا برای انسان دقونه خلق شده و صاحب روحی هست که نمی‌تونه فقط در پایینتنه خودش در جا بزنه و فقط برای ارزای پایینتنه زندگی کنه تا انسانی انسانی دوزخی و جهنمی میشه. خیلی ممنونم از پاسوختون سؤال دیگه داشتم یکی از مسائلی که امروز در مشاهده بشر امروز به چشم میخوره گریز بشر هست از وظیفه به کلی انسان امروزی وظیفه رو در شن خودش نمیدونه و معمولا با پناه آوردن به معانی چون عشق و میکنه سعی می که از وظیفه فرار بکنی و گویی بمیزانی که این تکبرش افزادش پیدا کرده وظیفه رو به عنوان یک عمل اعمال ناچیز و حقیر برای خودش می دونه. به طور مثال مثلا مرد امروزی که در قبال خانوادش وظیفه معیشتی رو بر داره ما میبینیم که چقدر از اینکه نون به خونه میاره منت و سر زن و ولی همین مرد در چهره بیرونی تبدیل به یک خیرخواه بزرگ و یا یک ایثارگر عاشق میشه و همچنین یک زن رو ما می‌بینیم که چقدر از وضایف همسری و وظایف مادری خودش میکراخت داره و باز همین زن با بیان عشق و ایثار از خونه بیرون میره تا برای بچه هاش و شوهرش به صلاح کار کنه و ایثار میکنه و یک سری همچین معانی رو برای خودش داره ترس از که فکر میکنه اگر مثلا توی خونه ظرف بشوره خب براش خیلی حبیره و کلن وضایف که در خونه چه مرد بر داره چه زن ما میبینیم که معمولا اینها رو میدونند چه مرد چه زن و خب یکی از مسئولی که در مورد همین نظافت شما صحبت میکنید معمولا ما میبینیم که الان خب یک نمونش در اروپا و آمریکا خیلی زیاد در ایران هم داره خیلی زیاد میشه میبینیم که یه آملیکایی روز دوبار دوش میگیره ولی خب با سگش روی تخت میخوابه و خب مثلا میبینیم مدفوع سگش هم احتمالا تو آشباز کنش یا اروپا هم همینطور حالا تو ایران هم که میگم به شدتی که شهرها مودرنیزه هست این مثال ها هم تره و نظافت در خونه رو در شهنه خودشون نمیدونن ولی به همون میزان شهرهای نظافتهای شهر رو نمیدونم روستا بود رو کشور رو اینها داده میشه به میزانی که شهرها پر نئون هست و ما شاهد خیابانهای تمیز و پاساشهای بسیار شکستیم وقتی به خونه های این افراد میریم میبینیم که ممنوع از کثافته خب پس این وظیفه چرا انقدر برای بشر حقییر شده چرا انقدر برای خودش کار کردن رو در واقع حقیر میدونه و گویی همیشه باید برای دیگری و دیگران کار کرد تا تو رو تایید بکنند برای همین وقتی نظافت برای خودش مطرح میشه و یا برای خانواده خودش یا وقتی معیشت برای خودش و خانواده خودش مطرح میشه چقدر بیارزش رو حقیر میشه ولی همین معیشت از برای همسایه ها و برای نمایش و بیرون چه عظمتی پیدا میکن. با هم نمیشم اگر این مسئله دو بیشتر توضیح دید اگر رجوع کنیم به داستان خلقت انسان که در آمده در اینجا در شناخت ابلیس ما به چیزی میریسیم که تمام مسائل که شما کردیم کردید میتونیم میتون مسوش استخراج کن ببینید ابلیس کسی بود که آدم را سجده نکرد عبا کرد اکرار کرد چرا برایینکه گفتش که این لجن متعفنی که خدا خودش رو در روی در میده و میخواد خلیفه خودش کنه من چرا او را کنم با اینکه میبینم که علم او خیلی بیشتر از منه خب پس ابلیس اومد تکفیر کرد آدم رو و بعد برای توجیه تکفیر خودش به خدا گفتش که خدای من به غیرست رو نایم پرستم و سجده نمی و اصلا کسی رو ربون ندارم به غیرست رو من عاشق تو هستم از فرس عشق حرفتو گوش نمیدن خدا گفت اگه عاشق من از سیخو خب من میگم اینه سجده کن تصدیر کن نیرا کن علم شکمتش همه چیزش از تو بیشتر و او افصالی میدونی که هرگز نیمیدونی ولی او باز هم خودش رو به تجاوز زد گفت نه در شانی نیست که من غیر استور اصلا تصدیر و تایید کنم تا گفتش که پس رج میشیم میشیم میدید به جهنم گفت باشو میرم من از فرشت عشق من حرفت رو گوش نمیدم میرم به جهنم ببینید اینا تمام نمایشات عشق و ایسار ابلیس بود بعد ابلیس با این نوع عشق و که بشر امروز اکسران بهش مقتلاست و اندفیدو که خدا به اشتنگرده با زیر نرفت به اسم خود خدا و تعریف شعار عشق به خدا تکبره به خدا کرد و آخر سریع به خدا تومت هم زد و خدا تو ما خریب داده اخبار کرده این نواقه خدا مشروطش کش بود ظاهرن زد هم به اون زد هم گوش به حس به خدا نگرد و ایثارم که گفت به جهنم باشه میرم در جهنم بسوزم ببینید داستان انسان این روزه اینش خوی ایسار که انسانم در شخص می زنه در می زنه که دستاری خمسا بگاه داشته امروزه جهانی و همگانی شده، ایدولوژیکی شده، در بازه بازه گفت عشق ابلیسیست، اصل ابلیسیت همینه ابلیسیت همینه، ابلیسیت نمیشه در لباس ملوسترین و زیباسترین خودش رو پنهان میکنه ابلیسیت ولی، در واقع بشر کافر، یعنی بشری که کافر نسبت به نیازهای خودشه و نمی‌خواد نیازهای خودشو ببینه و تصدیح کنه یعنی نمیخواد پایین خودش رو گراده بقا و جانش هست رو ببینه و تایید کنه این مثبت به جان خودش کافره کافر این یعنی منکر این در نسبت به خلقت خودش متکبر و منکره و این انکار طبیعتاً به انکار نسبت به خدا میانجامه منطقه تحت لباسش خوی ساره مثال هاگیت مزایی بسیار مثال های واضعی بود لعبا همین داره مخصم بشر امروز واسطه و قاسطه و دبدبهی که باسته بلوم و فنون و تکنولوژی باش پدید اومده واقعا ادعای خدایی میکنه اصلا انسان بودن خودش رو به نیازها و غرایز سعی میکنه فراموش کنه و اصلا هیکل خودش و تا درشن خودش نمیدونه پشته به خودش به هم نیزان کافره برای همینه که میگه که این اکامی دین و این در من نیستش که اینها مال ابلهان و احمقان و های حقیر و سفی است در هم کافر به این معنا معرفی شده که کافران میگویند ما عالمانیم، تیم خدا و رسولان به درد سفیهان و بدبختها میخوره. این منطق امروزه جهانی شده تا عنوان اشقی سار و ما می بینیم که بزرگترین و واقعا سرسام آورترین این طبیه های رو در قرد و مخصوصا در امریکا می بینیم. از زبان تباه شدترین و تباه کارترین ها و مفصلترین ها این فکر فرق در جهانی و در کشوری ما هم این بزرگ مسلط میشه. تا دومونش میسار، دین خدا رو منکر میشن، دین خدا رو منکر میشن، یعنی چی؟ یعنی ولیش و حقوق دینی رو منکر میشن. ولی من با شنیدن این موس، حتی آداب کاری بزاری که میگی اصلا این زمین هم نمیتونه نیاز سلما برقرار دکونده داشتن من نیست. من میرم به مرزیخ و ورانوس میرم در اونجاها میخوام برم این قایت تکبرشه و در واقع قایات اهمانگردشه و نایرش به جنون و جنایت ما میبینیم که اشد این جنون و جنایت ها تحت عنوان این عشقا و ایسارهای ابلیسی که خود نمایی میکنه ما این رو به ترجمه میبینیم اونهایی که در خانه از خانه بر حسب ظاهر اصفه خدمت به مردم و عشق به مردم و ایسار به مردم و خیرات و مبرات و از اینجو سرویس ها هستن ما میبینیم که اینها در خانه خودشان و در حلیب زندگی واقعی خودشان وزیف و نشناسترین و لا و متکبرترین و کافرسرین آدم ها هستن بله به قول شما به انسان مدرمی موزه روزی دو بار روش میگره ولی میبینیم که تمام حیکلش قارچه اموزه امراض جلی دیگه خب خود همین بزرگترین و بازیترین پیام این جهر و جنونه و رسوائی این جهر و جنونه انسان تمیز نیست و این استقر از نظافت مدن ایمان نیست این جنونه این جنگی با خداست برای همین این نونظافت های دروقین همش تیریادو تبدیل و انواع وصفاس ها میشن امروز ما بنوکنیم این وصفاس ها هم جزوی بیماری ها اپیدمیک و موسی دارن میشن جزوی بیماری های دارن میشن. در خو این ومس ها کسایی بهش مبتاند ها که ضد وی به ترین آدم ها هستندلی ابتراعی ترین حقوق وظایف خودشون اقرار دارند هر که م نماز نازند بکنند این یا نم باشه چون دین نماز نیست نماز فرو دینه و نتیجه دینه، اصول دین چیز دیگری است که ما صبتش کردیم. بنابراین این مسپا خودش عذابه اگر تمیزی از طریق فقط دوشی گرفتن باشه چرا همین پوشت بدن و تمیز نمی‌کنه؟ ما میتونیم که 90% در امریکایی امراض لا علاج دارن این داره جهانی میشه ما میبینیم که مفسدترین و منجورترین آدم ها دوشار تمیزی های تمیزی هستن اینشون میده که جانشون چنان در کسافات غرق شده کسافات حاصل از کپر و انکار و کفر و وظیف نشناسی و تمام این وصفاسی ها و دیوانه ها ما میبینیم که پرچم های عشق هم عیسال با خودشون یکی عاشق فرزندانش، یکی عاشق جامعه است و از اینجور مزخرفات دیگه همه جا گندش در میان فرق نمیکنه کنید چه بسا عاشق به خلق تحت عنوان آزادی خواهی ها و برابر برابری و عدادتگیوی یا این نوع مدیل ها ما دیدیم البته نکس انجینی باشند ولی ما میبینیم که بسیار اینگونه بودند اینهایی که ظاهرند از عشق و به خلق میزنند ما میبینیم که در زندگی دوزمرقه خودشون چند سن هم متکبر قسیل قلب و متجاوزند بسر امروز حتی نیازی جنسی خودش رو هم هم نداره که بره ازدواج کنه و به حقوق مربوط ازدباشند رو بوده یه آقا من عاشقم اسم نیاز جان ولی خودش رو عشق گذاشته من عاشقم من چی؟ یعنی وزیفه نمیشناسم خب این عاشقه نیه آقا ولیه چیه قانون چیه حقوق چیه رضا چنگستانی به خود نها که انسان های تجاوزگر، زناکار و سوزگر باشن. تده اموان اشخوی سار. این مسئله موزه کاملا رسفا شده. این همان ابلیسیت. که لطیفترین و موزیانهترین و تجاوزکار ترین نوع کفر هست که با خودش شعار عشق سار رو داره همده میکنه. خب اموان نتیجیگری اگر بخواهم به اینجا میریستین که بنابراین انسان به میزان که خودش رو میشناسه نیازها خودش رو میشناسه به معرفت داره میبینه که چاره جز تندادن به وظایفی که خداوند تقییم کرده نیست راه عزت و سلامت و شرفش و نویتش و احساس وجودش دادن به این حقوق و وضعیتیست که انبیاء الهی برای ما به عرص گذاشتند. تو انسان به میزانی که خودش رو میبینه که دا چه بر نمیخیزن گلدی ارادگی بر نمیخیزن مسیاری از نیازها انسان رو به کار خلاف و به جرم و چه به جنایت و به زنا و خطا میگشونند انسان باعث بخواده که اینه از خودشه تا صاحبی وجود خودش بشه حسو خانی بروفی حافظشی داره هی. گناه هرچگرچه به اراده ما نیست ای حافظ تو در تجیل ادب کوش و گو گناه من است. ببینید انسان به میزانی که این کنشها و این نیاز های بی اختیار خودش رو متعهد و متقبل میشه و رسال دین خدا تقیی میکنه نفس خود تربیت کنه کم کم صاحب اراده و صاحب وجود میشه و احساس وجود و احساس جاودانگی میکنه احساس حیات و هستی و قدرت و قناعت باطنی و روحی و قلبی میکنه برامه انسان کافر متکبر چیزهای خوب خوشش را از خودش میده تمام خطاها و گناهها ها و روقا یا رو میقا جون حس که ممکن که خودش کرده بعد که قا شد اینکه من مجبور بودم تخصیر همسایه امساییت تقصیر دیگران تقصیر حکومت تثیر زمین و زمانه در تفری من نیست بنابراین خداوند نیازها رو در انسان نهاده تا انسان رو به سوی خودش که آستانه بین نیازی مطخص بکش انسان در مرحله اول سعی میکنه بر اساسی کوول خودش خودش به خودی خود نیازاسش کنه این یک تلاشی جاوری است. بعد گام بگام می بینه که نمیتونه کم مو به دیگران میکنه و افان میکنه به مردمان میکنه. فاز دوم تلاش برای زای نیازه و به میزانی که بر اساس اقامی دین عمل میکنه و بعد پیشناسی میکنه و تروا پیش میکنه می که نه خودش میتونه ازخص نیاز خودش بر بیاد و نه عزیزترین کسانش و نه جامعه میتونه نیاسایی رو ارضا کنه و به او احساس وجود ببخشه بزا گام به گام خدا رو در خودش میشناسه و به نزد خدا که اون بینیازی مطلق هست میره بینیازی مطلقی که خود منشای وجود و مظهر جاودانگی مطلقه و او به او میکنه و بر این آستانه و قلم رو احساس وجود احساس جاودانگی، و که احساس قوت و قناعت و مناحت تبت میکنه. احساس عزت و سرفرازی میکنه و دیگه از بوی لجن خودش بعدش نمیاد مثل ابلیس انسان متکبر نسبت به نیازهای خودش در واقع ابلیس خودشه همونطور که ابلیس کار کرد آدم رو لند کرد و به فریب انسان پرداخت در واقع ابلیس انسان متکبر نسبت به نیازهای خودش که اتا از رشن خودش نمیدونه و هیچ وزیفی رشن خودش نمیدونه خودش ابلیس خودش یعنی خودش تحت فرمان ابلیس قرار داره و که روی میکنه داره از ابلیس یعنی خودش دشمن خودش و لحن کننده خودش هستش بنابراین به عنوان کلام آخر گفتش که انسان دو میزانی که هران چه که از خودش برمیاد از ناخداغای خودش از ذات خودش برمیاد رو میشناسه بر اساس و دیگه شناسی آن رو مهار میکنه و این نیازها که همش از بیخودی خودشه آن رو خودی میکنه انسان از نیازها تماما از عدمیت انسانه وجود خداوند خالق است انسان به میزانی می که این عدمیت رو در قلم رو به نیازها درکت تجربه میکنه روی به وجود میکنه و چگونه روی به وجود میکنه از طریق اطاعت از اکامی که خداوند به عنوان مصحر وجود برای انسان قرار داده که همان وزیب شناسی هست انسان به تدویج طبقات و لائنه نفس خودش رو که تماما نیاسه هستند درد میکنه تربیت میکنه و از خودش میکنه و خودش میشه خوبیت یعنی خود شدن قرارشم هم همینه که انسان رو به احساس وجود و احساس عزت و شرافت در خودش میرسنه تا انسان بتونه با خودش دوست بشه و دست از ابلیسیت نسبت به خودش برداره انسان نسبت منکر نیازهای خودش انسانی که امش میخوا سنگهای گنده برداره بزنه و میگه این سنگهای کتوبی داشتن من نیست چه این انسانی اسیر ابلیس یعنی خود دشمن خودشه و ابلیس داره فرمان برداری میکنه نه از خدا انسانی که از خدا حرمان برداری میکنه در واقع از احکام رسولانش که تماماً وزیف شناسی هست تاعت میکنه و چنین این انسانی به تو و قناعت تب میگرسه و میتونه این عدمیت خودش رو چون نیازها به انسان احساس نابودی میبخشن میتونه ارضا کنه و از عدم هستی بیاختارینه و خود از عدم خود در طریق پیلوی از دین خدا و از کنه به خودش جاودانگی بهدانگی